عزیزان، به کلاس دیگه ای از دانشکده یک کتاب مقدس خوش اومدین. ما از شما می میکنیم که دانش مهمترین کتاب دنیا باشیم. چون که اون کلام خداست. حالا بیایید به معلممون ملحق بشیم و به کتاب های یوئیل نگاه کنیم. بیایید ببینیم خدا میخواد از درس امروز چی یاد بگیریم. ای مستان، بیدار شده، گریه کنید و ای همه میگزاران به جهت اسیر انگور، زیرا که از دهان شما منقطه شده است زیرا که امتی قوی و بیشمار به زمین من حجوم میآورند آورند دندانهای ایشان دندانهای شیر است و از راس ایشان از راس حجبر تاکستان مرا ویران و انجیرهای مرا خراب کرده و پوست آنها را بالکل کنده بیرون انداختهاند و شاخه های آنها سفید شده است مثل دختری که برای شوهر جوانی خود پلاس میپوشد ماتم بگیر. هدیه آردی و هدیه ریختنی از خانه خداوند منقطع شده است. کاهنانی که خدام خداوند هستند ماتم میگیرند، صحرا خشک شده و زمین ماتم میگیرد، زیرا گندم تلف شده و شیره خشک گردیده و روغن زایع شده است. ای فلاحان، خجل شوید و ای باغبانان ولوله نمایید به جهت گندم و جو زیرا محصول زمین تلف شده است. موها خشک و انجیرها زایه شده، انار و خرما و سیب و همه درختان صحرا خشک گردیده. زیرا خوشی از بنی آدم رفت شده است. ای کاهنان، پلاس در دربر کرده، نوه گری نمایید و ای خادمان مذبح، ولوله کنید و ای خادمان خدای من داخل شده در پلاس شب را بسر برید زیرا که هدیه اردی و هدیه ریختنی از خانه خدای شما بازداشته شده است. روزه را رو تعیین نمایید و محفل مقدس را ندا کنید. مشایخ و تمامی ساکنان زمین را به خانه یهو و خدای خود جمع نموده نزد خداوند تذرر نمایید. وای بر آن روز زیرا روز خداوند نزدیک است. و مثل حلاکتی از قادر مطلق میآید آیا معکولات در نظر ما منقطع نشد و سرور و شادمانی از خانه خدای ما؟ دانه ها زیر کلوخ ها پوسید مخزن ویران و انبارها خراب شد زیرا گندم تلف کردید. به چقدر ناله می کنند و رمه های گاوان شوریده احوالند چون که مرتعی ندارند و گله های نیز تلف شدند ای خداوند نزد تو تزریق رو نمایم زیرا که آتش مرتعهای صحرا را سوزانیده و شعله همه درختان صحرا را افروخته است. یوئل دومین نبی از دوازده نبی بعدی هست که به انبیای کوچک معروف هستند. یوئل کتاب خود را با آیاتی که الان خوندیم شروع کرده. نمیدونم چیزی رو که یوئل شعر میده تا حالا دیدید یا تجربه کردید؟ من یکی از این دسته ملخا رو دیدم که هرچه بر روی زمین بوده جارو کردند. تجربه وحشتناکیه. صدای ملخا بسیار ترسناکه وقتی که حرکت می‌کنند زمین را از سبزیجات پاک می‌کنند. وقتی که یویل به آفت وحشتناک ملخ در ایام خودش تمرکز می‌کنه، اون رو بلای ملخ ها می می‌خونه که حقیقتا فاجعه دردناکی بود که سبب قحطی وحشتناکی در کشور شد. وقتی یویل روز خداوند رو بلای ملخ خونه، او همون شرحی رو به کار میبره که بسیاری از انبیا اون رو به کار بردن. تعیین تاریخ یویل نبی سخته چون که او در آغاز کتاب خودش از هیچ پادشاهی که در دوره یویل حکومت بکنه نام نمیبره. این به دو معنی هست. اولا معنیش اینه که پیغام کتاب در مندرجات کتاب هست و شما نیازی به دیدگاه تاریخی برای درک پیام ندارید. ما در ثانی به این مناس که خیلی سخته که بتونیم موقعیت یوئیل رو در تاریخ یهود ثبت کنیم. محققین در زمان زندگی یوئیل اختلاف نظر دارند. محققین روشنفکر یوئیل رو متعلق به اواخر تاریخ یهود می دونند. حدود 500 تا 400 سال قبل از میلاد و دلیلشون هم اینه که اگر او رو در اوایل تاریخ یهود قرار میدادند اون موقع نبوتهای او بسیار خارق العاده می شود. قرار دادن او در ایام آخر تاریخ یهود خارقلاده العاده بودن خدمت نبوتی او رو کمرنگتر تر میکنه محققین روشنف همیشه سعی می کنند که این انبیا رو تا آنجا که میتونند در اواخر تاریخ یهود قرار بدن محققین محافظه کار تا آنجای که میتونند این انبیا رو در اوایل تاریخ قوم یهود قرار میدن چون هرچقدر خدمت نبوتی اونها دورتر میره خدمت نبوتی اونها خارق العاده تر میشه محققین محافظه کار یوئیل رو متعلق به 830 قبل از میلاد میدونند، او رو معاصر ایلیا و الیشا میدونند. این او رو مقدم بر انبیاء بزرگ و قبل از اسارت بابل قرار میده اگر یوئیل رو در جای که محققین محافظه کار قرار میدن بررسی کنیم یوئیل به اسارت رفتن بابل رو 200 سال قبل پیشگویی کرده یوئیل روز پنتیکاس رو حدود 800 سال پیش از وقوعش نبوت کرده حالا خواه یویل پنتیکاس رو 800 سال یا 400 سال قبل از وقوع پیشگویی کرده باشه این باعث هیچ تغییری در العاده بودن نبوت پنتیکاس نمیشه بیشتر از این دیگه در مورد تاریخ زندگی یوئیل صحبت نمی کنیم برحال نبوت های مکاشفهی یویل 2000 سال بعد از پنتیکاس رو هم دربر میگیره گیره همونطور که در ابتدا دیدیم یوئیل بر آفات مللخا تمرکز میکنه تا پیغامش رو بیان کنه. او در موعظه میگه که بلای ملخها روز خداونده. او ملخا رو با لشگری مقایسه میکنه که اگر چیزی در مورد ملخا بدونید حتما میدونید که اونها مانند یک ارتش کار میکنند. یوئیل میگه که این ها عملا ارتش خداوند هستند. یوئیل برای پادشاهی جنوب موعظه میکنه. او به قوم یهودا میگه که این ویرانی از سوی خدای قادر مطلق به خاطر گناه بدپرستی به عنوان داوری بر اونها میاد یویل در معزهش میگه روز خداوند فرا رسیده، وای از آن روز او به طرزی شیوا طرز کار عملی ملخها رو توضیح میده او میگه چه قدرتمند اونها کوها رو مانند شب میپوشونند. این قوم چقدر قدرتمند و عظیم هستند نظیر اونها تا کنون دیده نشده گاهی تشکیسش سخته که بدونیم یا یوئیل در مورد ارتش بابل صحبت میکنه یا در مورد ملخها در باب دو یوئیل آشکارا در مورد ملخها صحبت میکنه در آیات چهار تا یازده او اینطور ترمز میکنه منظر ایشان مثل منظر اسبان است و مانند اسب سواران میتازند مثل صدای ها بر قله کوها جست و خیز میکنند مثل صدای شعله آتش که کاه را میسوزاند مانند امت عظیمی که برای جنگ صف بسته باشند از حضور ایشان قوم ها می لرزند. تمامی روی ها رنگ پریده می شود مثل جباران می دوند مثل مردان جنگی بر حصارها برمیآیند و هر کدام به راه خود می آیند و طریق های خود را تبدیل نمی کنند بر یک دیگر ازدهام نمی کنند زیرا هر کس به راه خود می خرامند. از میان هربه ها حجوم می آورند و صفح خود را نمی شکنند بر شهر می جهند، روی حسارها می دوند، به خانه ها آیند، مثل دزدان از پنجره ها داخل می شوند، از حضور ایشان زمین متزلزل و آسمان مرتعش می شوند. آفتاب و ماه سیاه می شوند و ستارگان نور خیش را باز می دارند. و خداوند آواز خود را پیش لشکر خیش بلند می کند زیرا اردوی او بسیار عظیم است و آنکه سخن خود را به جا می آورد قدیر است. زیرا روز خداوند عظیم و بی نهایت محیب است و کیست که طاقت آن را داشته باشد. یویل برای قوم یهودا موعظه میکنه که بلای ملخ ها روز خداونده. اونها رو دعوت به مراسم رسمی توبه و دعا و روزه میکنه. یوئل اعلام میکنه که کاهنان دلهای خود را چاک بزنید نرد آهایتان را. یهودیان سنتی امروزه هم وقتی میخوان پشیمانی واقعی خودشون رو نشون بدن لباسهای خودشون رو پاره میکنن احتمالاً در کنیسه های مدرن امروزی اونها باید جیبهاشون رو به عنوان جستی سمبولیک پاره کنند. وقتی که یویل دعوت به توبه واقعی میکنه به اونها میگه لباسهای خودتون رو پاره نکنید قلبهای خودتون رو چاک بزنید وقتی این نبوت کوچک یویل رو میخونید واضح که وقتی یوئیل از بلای ملخها به عنوان روز خداوند صحبت میکنه، او میگه که بلای فعلی روز خداونده. بعد گاهی هم واضحه که او در مورد اسارت بابل صحبت میکنه که هنوز واقع نشده. روز تاریکی و ظلمت، روز عبرها و ظلمت قلیز مثل فجر منبسط بر کوها. امتی عظیم و قوی که مانند آن از ازل نبوده و بعد از این تا سالها و درهای بسیار نخواهد بود. پیش روی ایشان آتش میسوزاند و در عقب ایشان شوله ملتحب می گردد. پیش روی ایشان زمین مثل باغ ادن و در عقب ایشان بیابان بایر است و نیز از ایشان اهدی رهایی نمییابد در بعضی از این پاراگرافها یوئیل مشخصاً از بابلیها صحبت میکنه و مانند دیگر انبیای دوران اسارت اسارت بابل رو پیشگویی میکنه همونطور که دیگر انبیا اسارت رو نبوت کردند او باز هم میگه روز خداوند او میگه روز خداوند میاد و وای از آن روز وقتی یوئیل پیغام بلای ملخها رو به عنوان روز فعلی خداوند موعظه میکنه در مورد اسارت بابلیها هم صحبت میکنه و از اون به عنوان روز خداوند در آینده صحبت میکنه بعد او در مورد آمدن خداوند به نوعی دیگه صحبت میکنه او اینطور میگه و بعد از آن روح خود را رو بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها ها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر قلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد پیش از ظهور یوم عظیم و محیب خداوند و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهد بود و در میان باقی ماندگان آنانی که خداوند ایشان را خوانده است همه ما با این واقعیت در باب دوم اعمال در روز پنطیکاست آشنا هستیم پتروس معجزه روز پنطیکاست رو با گفتن این کلمات شرح میده ای یهودیان این همان است که یوئیل نبی در بارش چنین پیشگویی کرده کتابی در مورد پنتیکاس نوشته شده و عنوان کتاب اینه. معنی این چیه؟ و شخصی جوابی برای این کتاب نوشته با این عنوان. این همان است. هر دوی این سوالات در کتاب اعمال رسولان پرسیده شده و جواب داده شده. وقتی مردم دیدند که زبان‌های مانند آتش بر سر شاگردان فرود آمد، وقتی شنیدند که آنها به زبانها صحبت می کنند، وقتی اون صدا رو شنیدند که مانند صدای وزش باد بود و اون زبان عمومی رو شنیدن و تمامی اون معجزات و پدیده‌هایی که در رابطه با پنتیکاست بود دیدند پرسیدند معنی اینها چیه پتروس پاسخ داد این همانی است که توسط یوئیل نبوت شد پس ما از کتاب اعمال رسولان می‌فهمیم که یوئیل مشخصاً از این معزه عظیم صحبت می‌کرده از روز پنتیکاست اما اگر نبوت یویل رو در مورد پندیکاس با جزئیاتی که در آیات 28 تا 32 باب دو آمده مطالعه کنید، میبینید که عملا این به معنی ریزش روح القدس بر مردم بود. وقتی حزقیال نبی رو مطالعه میکردیم، اشاره کردم که روح ما رو خدمت میکنه. روح با ما هست و روح بر ما قرار میگیره. قرار گرفتن روح بر ما به عنوان مصح روح القدس توصیف شده. نبوت اشعیا؟ مسح خاصی از روح القدس رو بر مردم توضیح میده. مسحی که در نبوت یویل توضیف شده مربوط به مسح تمامی انسان هاست، نه فقط قوم یهود. این مسح در روز پنتیکاس اتفاق نیفتاد چون تمامی کسانی که در روز پنتیکاس روح القدس رو دریافت کردن یهودی بودن. زبانی که در روز پنتیکاس صحبت میشد نبوت بود چون پیغام در گوش مردم معنا داشت. هایی که در اول قرنتیان 142، پولس رسول با آن اشاره کرده که در دعاها از اون استفاده میشه در گوش خدا معنی داره. روز پنتیکاست توسط یویل نبوت شده بود که برای تمامی اخشار مردم خواهد بود، برای افراد ممتاز و معمولی. طبق نبوت یویل، وقتی موجزه پنتیکاست واقع میشه مردم نام خداوند رو اعلام می و نجات پیدا می کنن. البته در روز پنتیکاست، سه هزار نفر نجات پیدا کردند، اما واضحه که اگر جزئیات نبوت یوئیل رو مطالعه کنید خواهید دید که برخی از این جزئیات در روز پنتیکاست انجام نشده یکی از استادان قدیمی من دکتر چارلز فنبرگ یک یهودی نجات یافته بود و محقق بزرگی بود که کتابی در مورد دوازده نبی آخر نوشته دکتر فنبرگ در کتابش به ما میگه که وقتی نبوت یوئیل رو مطالعه میکنیم و چیزی که در روز پنتیکاست اتفاق افتاد او میگه برخی از اون جزئیات در روز پنتیکاست اتفاق افتاد اما در ایام آخر به کمال خواهد رسید من هم همون رو نقل قول میکنم او میگه که نبوت یوئل مقدمتا در پنتیکاست به انجام رسید اما انجام کامل آن در ایام آخر خواهد بود وقتی که نبوت یوئل رو مطالعه میکنید خواهید دید که او چیزهایی رو پیشگویی کرده که هنوز به انجام نرسیده آیات را از خون و آتش و ستون‌های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد. پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد زیرا در کوه سهیون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهد بود و در میان باقی آنانی که خداوند ایشان را خوانده است این نبوت قراره که در ایام آخر انجام بشه وقتی که کتاب یوئیل رو بررسی می کنید همونطور که در همه کتاب کتاب مقدس سوال می کردید، از خودتون بپرسید پیغام این کتاب چیه و مهمتر از همه وقتی به کتاب یویل می این سوال رو بپرسید کار برد عملی پیغام این کتاب برای زندگی من چیه؟ در کتاب یویل به اعتقاد من پیغام در این عبارت هست روز خداوند. بسیاری از انبیا این عبارت رو به کار بردن سفنی بیش از دیگر انبیا این عبارت رو به کار برده پتروس در باب سوم نامه دومش به روز خداوند اشاره کرده دقیقا معنی روز خداوند چیه؟ و یویل وقتی در مورد روز خداوند می کرده چه منظوری داشته؟ گاهی چنان که گفته هم به چیزی نگاه می کنه که درست در ایام خود او واقع میشه اونجا که میگه این روز خداوند است او به واقعه آفت ملخ اشاره میکنه و میگه این ویرانی از جانب خدای قادر مطلق هست اون ملخ ها ارتش خداوند هستند و وقتی میگه این روز خداوند است به اعتقاد من او قصد داره که به ما کاربرد شخصی پیغامی رو که مععزه کرده بده وقتی به شرایط زندگیتون نگاه میکنید که به نظر میرسه غمانگیز و آشفته و بار هست، آیا فقط دستاتون رو بلند میکنید و میگید خدا یا جریان چیه؟ چرا من؟ چطور ممکنه این اتفاق برای من بیفته؟ به گمانم یویل ما رو به چالش میکشه که در هر اتفاقی که پیش میاد دست خدا رو ببینیم. پولس رسول در رومیان باب هش میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست دارند و بر طبق اراده او فرا شدهاند همه چیزها. با هم برای خیریت در کار است. اگر شما خدا رو دوست دارید و محبتتون رو با خواندگی بر حسب اراده او ثابت می‌کنید و واقعا اراده او رو در زندگیتون می‌خواهید، اون موقع خدا می‌تونه همه چیز رو در زندگی شما به نیکویی بدل کنه. پولس نمیگه که اینطور پذیرید که هر اتفاقی در زندگیتون میافته نیکو هست. بلکه منظورش اینه که به ما بگه خدا می‌تونه اون چیزها رو به نیکویی برای ما تبدیل کنه. به هر حال اگر شما رویاه یوئیل رو دارید، اگر این توانایی رو دارید که دست خداوند رو در هر چیزی ببینید، اون موقع میتونید با مسیبتها روبرو بشید و بگید این روز خداوند برای من هست. یوئیل توانست به مصیبت آفت ملخا نگاه کنه و بگه این روز خداونده. چه رویای نبوتی یوئیل سارت بابل رو میبینه و فراتر از اون رو هم میبینه و میگه روز خداوند در راهه. خیلی ها از آینده میترسن. اونها در گذشته زندگی میکنند چون از رویارویی از آینده میترسن. فکر میکنم یویل به طور کاربردی به ما میگه وقتی به آینده نگاه میکنید شاید ندونید آینده چه چیزی براتون داره. اما کسی رو که آینده در دستان اوست میشناسید. روز خداوند میآید و وقتی روز خداوند میاد اون روز هم روز او خواهد بود. یویل از ما میخواد به گذشته نگاه کنیم و در ضمن این دیدگاه رو داشته باشیم که اون روز هم روز خداوند بود. کاربرد عملی کتاب یویل از یک الگو تبعیت میکنه. وقتی به شرایط فعلی نگاه میکنید، وقتی به گذشته نگاه میکنید، وقتی به آینده نگاه میکنید، باید روز خداوند رو ببینید. شما شاید تجربه آفت ملخ و یا رفتن به اسارت بابل رو نداشتید، اما شما هم تجربیاتی ت وقتی به گذشته نگاه می کنید هیچ کدوم از ما نمی خواستی متولد بشیم. هیچ کدوم از ما والدینمون من رو انتخاب نکردیم. وقتی به شرایط زمانی نگاه می کنید که در اون به دنیا اومدید خواه زمان خوبی بوده یا زمان خوبی نبوده باید رویای یویل رو داشته باشید و کاربرد عملی اون رو بپذیرید و بگید اون روز روز خداوند برای من بود. والدینم، خانواده هم،, زادگاه هم در این دنیا هیچ کدام تصادفی نبودن. تمامی اون محرکه ها بخشی از نقشه خدا برای من بوده. حالا، وقتی به شرایط شخصی فعلیتون نگاه می هر چیزی که می باشه. شاید به دیگران حسادت می کنید. شاید فکر کنید، اگه می درست مثل فلانی باشم، همه چی میشد می همه ما این گرایش رو داریم که خودمون رو با دیگران مقایسه کنید. اما کتاب مقدس مکررن به ما میگه که این کارو نکنید. پولس رسول به ما میگه اگر خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، حکیم نیستیم. کتاب مقدس مکررن تأکید میکنه که همه ما منحصر بفردیم و خدا برای هر کدوم از ما نخشهی منحصر بفرد داره. وقتی خدا منو شما را خلق کرد، او از یک قالب استفاده نکرد. هیچ کسی شبیه ما نیست و ما هم شبیه کس دیگه ای نیستیم. قرار هم نیست شبیه کس دیگه ای باشیم. حالا اگه این واقعیت داره چطور میتونیم با مقایسه خودمون با دیگران اراده خدا رو در زندگیمون کشف کنیم؟ وقتی خداوند به پتروس گفت که چگونه خواهد مرد؟ پتروس به دوست و رفیق شوهنّا اشاره کرد. و پرسید: "پس او چی؟" خداوند گفت: "اگر من بخواهم او تا آمدن من زنده بماند، به تو چه ربطی داره؟ تو منو پیروی کن پتروس." نقشه من برای او به تو ربطی نداره خودت رو با او مقایسه نکن فقط از من پیروی کن یویل به ما نصیحت میکنه به جای حسرت خوردن به زندگی دیگران شرایط زندگی خودمون رو چه خوب و چه بد بپذیریم وقتی که به شرایط فعلی زندگیمون نگاه میکنیم مهم نیست که چقدر در هم آشفته باشه بجو زواقب به شخصی گناهانمون این روز خداوند برای من هست بعد وقتی به آینده با اعتماد و ایمان نگاه کنیم هر اتفاقی که برامون بیفته این دیدگاه رو داشته باشیم هر چیزی که پیش بیاد روز خداوند برای من خواهد بود چون من متقاعد شدم که هیچ چیزی بدون اجازه خدا در زندگی من اتفاق نمیفته ایمان دارم که این کاربرد عملی پیغام کتاب یوئیل هست بخشی از کتاب یوئیل که برای مردم بسیار جذابه قسمت نبوت او در مورد پندیکاس و در مورد ایام آخر و تمرکز بر زمانهای آخر هست. یوئل این بخش از نبوتش رو یوم وحشتناک و عظیم خداوند میخونه او بر یکی از اون وقایعی که مربوط به آمدن ثانویه مسیح هست تمرکز میکنه اگر شما مطالب مربوط به بازگشت ثانویه عیسی مسیح رو مطالعه کرده باشید میدونید که بازگشت ثانویه عیسی مسیح یک واقعه آنی نیست اون یک سری وقایع پشت سر هم هست اگر آمدن ثانویه مسیح رو در کتابهای نبوتی عهد قدیم مطالعه بکنید و بعد نبوت رسولان رو در مورد این وقایع در عهد جدید مطالعه کنید، خواهید فهمید که یک دو جین واقعه جدا از هم هست که همه اونها بخشی از واقعی هستند که بهش آمدن ثانویه عیسی مسیح میگیم. حالا اگر شما این آیات رو بخونید، میتونید درباره حقایق این واقعه دوچار تعصب بشید. اگر بخواهیم تمام این وقایه رو به لحاظ ترتیب تاریخ وقوع کنار هم قرار بدیم میتونیم دچار مشکلات جدی بشیم یکی از اون سری وقایی که میتونه بخشی از آمدن سانویه ایسای مسیح باشه واقعی هزار ساله یا هزار سال پادشاهی هست بر حسب تنوع باورها به لحاظ الهیاتی سه و دستبندی داریم عدهای متقدن عیسی قبل از هزار میاد که به اونها پره میگن ادهی معتقدند که مسیح بعد از هزار میاد که به اونها پست میلینیال میگند و ادهی باور دارند که این هزاره چیزی تمثیلی هست و عملا پادشاهی هزاره ای نخواهد بود و به این افراد ای میگند طبقه بندی های زیاد دیگری هم وجود داره اگر به تمامی این وقایه جدا از هم نگاه کنید خواهید فهمید که عملا چندین آمدن عیسی مسیح وجود داره همینطور که بعضی ها ملاحظه کردن یک واقعی ربایش کلیسا خواهد بود که این آخرین چیزیه که بسیاری از مردم انتظار وقوعش رو دارن این اولین باری هست که عیسی برمیگرده در اول تسالونیکیان باب چهار به ما میگه که عیسی برمیگرده برمیگرده که کلیساش رو از این دنیا ببره این معنی کلمه هست یادم نمیره وقتی که بچه بودم به کانون شادی میرفتم مفتول آهن رو با خلالدندان ها مخلوط کرد و همه اینها رو با همدیگه روی میز قرار داد بعد آهن رو با قوی رو آورد و این رو بر روی اون مخلوط گردون مفتولهای های آهنی جذب آهن رو شدند و خلالدندون ها روی میز باقی موندن بعد او گفت این کاریه که وقتی عیسی بیاد انجام خواهد داد این مفتطول آهنی نشان پیروان عیسی مسیح هستند تمامی پیروان مسیح جدا خواهند شد اونها به بالا برده خواهند شد تا در آسمان با خداوند باشند. بقیه بر روی زمین رها خواهند شد. وقتی من به این خلالدندان ها نگاه کردم، چشمام از تعجب کاملا گرد شده بود. من هرگز این مثل رو فراموش نکردم و تصمیم گرفتم که هرگز یک خلالدندون نباشم. و همیشه میخواستم که یک مفتول آهنی باشم. واقعا میخواستم که یکی از این افرادی باشم که در واقعه ربایش به بالا برده بشم. بسیاری بر این اقیده اند که ربایش اولین واقعه در آمدن ثانویه عیسی مسیح است. بعد از اینکه ربایش انجام شد، وقای دیگری اتفاق خواهد افتاد. بعد گفته شده که خداوند دوباره باز خواهد گشت. این بار او تا روی زمین خواهد اومد و به مدت هزار سال روی زمین پادشاهی خواهد کرد. شیطان در ابتدای این پادشاهی اسیر خواهد شد و در انتهای حکومت هزار ساله مسیح آزاد خواهد شد بعد از اون روز عظیم و وحشتناک خداوند خواهد آمد این چیزیه که پتروس در دوم پتروس باب سب اون اشاره کرده و همینطور چیزیه که یویل وقتی به روز عظیم و وحشتناک خداوند اشاره میکنه مورد نظرش هست وقتی یویل واقعی اسارت بابل رو نبوت میکنه او میگه روز خداوند میاد اما وقتی یویل با آن سوی پنتیکاست و به دوران ما نگاه میکنه اینطور میگه اما روزی به نام روز خداوند هست که خواهد آمد این روز عظیم و وحشتناک خداوند هست پتروس این رو اینطور شرد داده آن روز سبب خواهد شد که آسمان در آتش محو و نابود شوند و اجرام سماوی از گرما زوب گردند این چیزی که پتروس میگه در این روز عظیم و وحشتناک یعنی روز خداوند واقع خواهد شد دعای تلمودی بر اساس نبوت های و پتروس این طور اظهار کرده دنیا کشتی در حال غرق شدن هست نجات کشتی کار من نیست کار من اینه که قبل از اینکه که کشتی غرق بشه هر چند نفر رو میتونم از اون نجات بدم چون ای برادران اون در حال غرق شدنه این کار برد عملی هست که مودی از روز عظیم و وشتناک خداوند برداشت کرده حالا اون نگفته که شما باید وجدان اجتماعی رو زیر پا بذارید و هیچ کار خوبی انجام ندید چون روز خداوند میاد چیزی که مودی گفته اینه براساس اساس کتاب مقدس زمین داوری خواهد شد خدا نمیگه زمین تا آباد باقی خواهد موند کاملا برخلافش رو میگه او میگه که روزی تمامی زمین نابود خواهد شد تمامی این چیزها ذوب خواهند شد حالا اگر شما حرارت یک فعل و انفعال هستی رو مطالعه کنید میبینید که چون این حرارتی از انفجار بمب اتمی به وجود میاد اون خواهید فهمید که یویل و پتروس چه چیزی رو شهر دادن یک بار از یک دانشمند اطومی خواستم که اگر میشه حرارت ناشی از انفجار هستهی رو برای من توضیح بده او گفت اگر دیوار بتونی به طول یک زمین فوتبال داشته باشید و به همون اندازه ارتفاع و به همون زخامت و یک انفجار کنار اون انجام بدید تمامی اون بتونها زوب شده و تبدیل به دود خواهد شد تمامی اون از بین خواهد رفت تا اونجایی که تونستم اون رو درک کنم اون اینطوری واقع میشه در این اتمهای کوچک که شما نمیتونید ببینید یک واکنشی سبب میشه که اونها با همدیگه برخورد کنند و شکاف بردارند و در نتیجه اون حرارت شدیدی ایجاد میشه که باعث ذوب شدن تمامی مواد میشه من از این دانشمند که عضو کمیسیون انرژی اتمی بود خواستم که به طور ساده برای من توضیح بده که یه انفجار ای چی هست؟ بعد از اینکه کمی فکر کرد گفت یک انفجار هسته حرارت بسیار شدیدی هست که هر چیزی رو که سر راهش هست زوب میکنه کنه. سه هزار سال پیش پتروس که یک ماهیگیر گیر بی سواد بود گفته که دنیا چگونه خاتمه خواهد یافت. همه چیز با حرارت شدید و سوزانی زوب خواهد شد. هر چیزی که بر روی زمین هست زوب خواهد شد. بعد البته پتروس ما را به چالش بزرگی وا می‌داره. می می‌نویسه حالا با توجه به این رفتار انسان باید چگونه باشه؟ سیستم ارزشی شما باید چگونه باشه؟ اگر واقعا ایمان دارید که این اتفاق خواهد افتاد، باید چجور انسانی باشید؟ پتروس و یوئیل روز خداوند را رو روز عظیم و وحشتناک خداوند توصیف اند. این نمایی از روز خداوند در کتاب‌های انبیا هست، مخصوصاً در یوئیل که گاهی به گذشته و وقایع غم در تاریخ قوم یهود نگاه میکنه و میگه اون روز خداوند بود اون واقعه غم روز خداوند بود گاهی عنوان روز خداوند به داوری قریب الوقوعی که خواهد آمد اشاره میکنه و میگه روز خداوند خواهد آمد بعد گاهی با رویای نبوتی انبیایی مثل یوئیل به ماورای قرن ها نگاه میکنه به آن سوی دوره ما و دوباره همون عنوان رو به کار میبره و میگه روز عظیم و وحشتناک خداوند خواهد آمد. چیزی که انبیا در موردش صحبت می کنند همون چیزی که پتروس در دوم پتروس باب 3 ازش صحبت میکنه. من دوستی دارم که خیلی به روز عظیم و وحشتناک خداوند ایمان داره. گاهی اوقات او واقعا حال آدم آدمو می گیره اگه چیز تازه‌ای بگیریم او نگاه می کنه و نگاه میکنه و میگه خب بالاخره همه اینا خواهند سو. اگه کلیسای تازه‌ای بسازی، او میاد و به مهراب تازه نگاه میکنه و میگه میدونی تمامی اینها خواهند سوخت. اگه خانه ی ای بگیری و او برای شام بیاد میگه همه اینها خواهند سوخت و از بین خواهند رفت خب این طرز نگرش هم تا حدی مضر اما اگه شما به نبوت یوئیل و نبوت پتروس ایمان داشته باشید میبینید این حقیقته که همه چیز خواهد سوخت حالا چرا خدا در مورد روز عظیم و شتناک داوری با ما صحبت میکنه ملاحظه کنید هر بار که در عهد قدیم و در عهد جدید هایی در مورد آینده شده همیشه چنین هایی وجود داره با توجه به این واقعیت که روز عظیم و وحشتناک خداوند خواهد آمد با توجه به این واقعیت که همه چیز خواهد سوخت رفتار انسان باید چگونه باشه همیشه چون چنین هایی رو می‌بینید بنابراین استوار و بی‌تزلزل باشید همیشه مشغول کار خداوند باشید چون میدونید که زحمات شما در خداوند هدر نخواهد رفت وقتی که به روز عظیم و وحشتناک خداوند نگاه کنید همیشه در کتاب مقدس چنین هایی رو خواهید یافت به موقعیت فعلیتون نگاه کنید و بگید این روز خداوند برای منه بعد به آینده تو نگاه کنید و بگید روز خداوند برای من میاد بنابراین من با چیزهایی که ابدی، استوار، مقاوم و از آن خداوند هستند مشغول خواهم شد دوستان کتاب نبی ما رو به چالش بزرگی میکشه من نمیدونم امروز شما با چه مشکلاتی مواجه هستین اما خدا میدونه و در کلامش وعده داده که همه چیز با هم برای خیریت کسایی که اون رو دوست دارن و بر حسب اراده اون فرا خانده شدن در کار خواهند بود امیدواریم که این درس ها به شما کمک کنه تا در معرفت و ایمان رشد کنید تا بتونید در مواجه با مشکلات قوی باشین امیدوارم تا برنامه بعدی ما محبت و فیض خدا شما رو حفظ کنه